جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی یکی در صورت درویشان نبر صفت ایشان در محفلی دیدم نشسته و شنعتی در پیوسته و دفتر شکایت باز کرده و زم توانگران آغاز کرده سخن بدینجا رسانیده که درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادت شکسته، کریمان را به دستندر درم نیست، خداوندان نعمت را کرم نیست. مرا که پرورده نعمت بزرگانم، این سخن سخت آفد، گفتم ایار، توانگران دخل مسکینانند، و زخیری گوشنشینان، و مقصد زائران و کهف مسافران و متحمل بار گران از بهره راحت دگران. دست تناول آنگه به تعام برند که متعلقان و زیر دستان بخورند و فضلی مکارم ایشان به ارامل و پیران و اغارب و جیران رسیده. توانگران را وقف است و نظر و مهمانی، زکات و فطره و اعتاق و حدی و قربانی. تو کی به دولت ایشان رسی که نتوانی جز این دو رکعت و آن هم به سد پریشانی. اگر قدرت جود است و گر قوت سجود، توانگران را به میسر شود. که مال مزکا دارند و جامعه پاک و ارز مسون و دل فارق و قوت تاعت در رغمه لطیف است و صحت عبادت در کسفت نزیف پیداست که از معده خالی چه قوت آید و از دست توی چه مروبت و از پای تشنه چه سیر آید و از دست گرسته چه خیر. شب پراکنده خسبدان که پدید نبود وچه بام دادانش. مور گرد آورد به تابستان تا فراغت بود زمستانش. فراغت با فاقه نپیوندد و جمعیت در تنگ دستی صورت نبندد. یکی تهرمه اشابسته و دیگری منتظر عشا نشسته، هرگز این بدان کی ماند. خداوند مکنت به حق مشتقل، پراکند روزی، پراکند دل، پس عبادت اینان به قبول اولاتر است، که جمعند دو حاضر، نه پریشان و پراکند خاطر. اسباب معیشت ساخته، و به اوراد عبادت پرداخته عرب گوید اعوذ و من الفقر المکب و جوار من لا یوهب و در خبر است الفقر و سواد الوجه فدارین گفتا نشنیدی که پیغمبر علیه السلام گفت الفقر فخری گفتم خاموش که اشارت خاجه علیه سلام به فقر طایفه است که مرد میدان رزاقند و تسلیم تیل غذا نه اینان که خرقه ابرار پوشند و لغمه ادرار فروشند. ای تبل بلند بنگ در باطن هیچ، بی توشه چه تدبیر کنی وقت بسیج؟ روی تمه از خلق بپیچر مردی، تصویح هزار دانه بر دست مپیچ. درویش بی معرفت نگار آمد تا فقرش به کفر انجامد. کاد الفقرو ان یکون کفرا، که نشاید جز به وجود نعمت به پوشیدن، یا در استخلاص گرفتاری کوشیدند و ابناج جنس ما را به مرتبه ایشان که رساند و ید الیا به ید سفلا چه ماند؟ نبینی که حق جل و علا در محکم تنزیل از نعیم اهل بهش خبر میدهد که اولائی لهم رزق معلوم تا بدانی که مشغول کفاف از دولت افاف محروم است و ملک فراغت زیر نگین رزق معلوم. تشنگان را نمایدن در خواب همه عالم به چشم چشمه آب. حالی که من این سخن بگفتم انان طاقت درویش از دست تحمل برفت. تیغ زبان برکشید و اسب فساحت در میدان وقاحت جهانید و بر من دوانید و گفت. چندان مبارغه در وصف ایشان بکردی و سخنهای پریشان بگفتی که وهم تصور کند که تریاقند یا کلید خزانه ارزاق. مشتی متکبر مقرور، موجب نفور، مشتقل مال و نعمت، مفتتن جاه و ثروت که سخن نگوگند، الا به سفاهت، و نظر نکنند، الا به کراهت. علما را به گدایی منصوب کنند، و فقرا را به بیسر و پایی مقیوب کردانند، و به عزت مالی که دارند، و عزت جاهی که پندارند، برتر از همه نشینند، و خود را به از همه بینند، و نه آن در سر دارند، که سر به کسی بردارند. بیخبر از قول حکما که گفتند، هر که به طاعت از دیگران کم است، و به نعمت بیش، به صورت توانگر است و به معنی درویش، گر بی هنر به مال کند که بر برحکیم کون خرش شمار و گر گاو انبر است. گفتم مزمت ایشان روا مدار. گفتم مزمت اینان روا مدار که خدا بند کرم اند. گفت غلط گفتی که بنده درم اند. چون ابر آزارند و نمیوارند و چشمی آفتابند و بر کس نمیتابند بر مرکب استطاعت سوارند و نمیرانند قدمی بهر خدا ننهند و درمی بیمنه و عذا ندهند مالی به مشقت فراهم آورند و به خصت نگهدارند و به حسرت بگذارند چون که اکیمان گوگند سیم بخیل از خاک وقتی براید که وی در خاک روید به رنج و سعی کسی نعمتی به چنگارد دگر آید و بی سعی و رنج بردارد گفتمش بر بخر خداوندان نعمت وقوف نیافته ای، الا به علت گدایی، وگرنه هر که تمع یک سونه هد، کریم و بخیلش یکی نماید، محک داند که زر چیست، و گدا داند که ممسک کیست، گفتا به تجربتان همی گوگم که متعلقان بر درب دارند، و قلیزان شدید برگمارند، تا بار عزیزان ندهند و دست بر سینه صاحب تمیزان نهند و گوگند کس اینجا نیست و راست گفته باشند آن را که عقل و حمت و تدبیر و رای نیست خوش گفت پردهدار که کس در سرای نیست. گفتم به عذران که از دست متوقعان به جان آمدند و از رقعه گدایان به فغان و محال است اگر ریگ بیابان در شود که چشم گدایان پر شود دیده اهل طمع به نعمت دنیا پر نشود همچنون که چا به شبنم نم هر کجا سختی کشیده تلقی دیده را بینی خود را به شرح در کارهای مخوف اندازد و از توابع آن نپرهیزد و از اقوبتی زد نهراست و حلال از هران نشناست. سگی را گر کلوخی بر سراید زشادی برجهد که این استخانیست و گر نعشی دو کس بر دوش گیرند لعیم و تب پندارد که خانیست. اما صاحب دنیا به عین انایت حق ملحوظ است و به حلال از حرام محفوظ من همانا که تغییر این سخن نکردم و برهان و بیان نیاوردم، انصاف از تو توقع دارم. هرگز دیده دست دعایی برکیتف بسته یا بینوایی به زندان در نشسته. یا پرده معصومی دریده یا کفی از معسم بریده الا به علت درویشی شیرمردان را به حکم ضرورت در ها گرفتند و ها صفته و محتمل استان که یکی را از درویشان نفس اماره طلب کند چو قوت احسانش نباشد به اسیان مبتلا گردد که بطن و فرج توأمنند یعنی فرزند یک شکمند مادام که این یکی بر جای است آن دیگر بر پای است شنیدم که درویشی را با هدسی بر خवासी گرفتند با آنکه شرم ساری برد بیم سنگ ساری بود گفته مسلمانان قوت ندارم که زن کنم و طاقت نه که صبر کنم. چه کنم لا رهبانیت فی الاسلام و از جمله مواجب سکون و جمعیت درون که مرتوانگر را میسر شود، یکی آنکه هر شب سنمی در برگیرد که هر روز بدو جوانی از گیرد. صبح تابان را دست از سباهت او بر دل و سرو خرامان را پای از خجالت او در گل. به خون عزیزان فرو برده چنگ، سرنگوشت ها کرده رنگ. محال است که با حسن تلعت او گرد مناهی گردد یا قصد تباهی کند. دلی که هور بهشتی رو بود و یغما کرد، که ارتفاع کند بر بوتان یغمایی من کان بین یدیه مشتها رتبون، یقنی هزال که ان رجم اناغید اغلب دستان دامن اسمت به معصیت آلایند و گرسنگان نان رو بایند. چون سگ در رنده گوشت یافت نپرسد کین شطور ساله است یا خر دجال چه مای مستوران به علت درویشی در عین فساد افتادند و ارز گرامی به باد زیش نامی برداده. با گرسنگی قوت پرهیز نماند افلاس اینان از کف تقوی بسطاند. آتم تایی که بیاباننشین نشین بود، اگر شهری بودی، از جوش گدایان بیچاره شدی و جامع بر برو پاره کردندی. گفتم نه که من بر حال ایشان رحمت میبرم. گفتم نه که بر مال ایشان حسرت میخوری. ما در این گفتار و هر دو به هم گرفتار هر بیدغی که براندی به دفع آن بکوشیدمی و هر شاهی که بخاندی به فرزین بپوشیدمی تا نقد کیسه همت در باخت و تیر جعبه حجت همه بیانداخت هن تا سپر نگفکنی از حمله فسی کورا جز آن مستعار نیست دین ورز و معرفت که سخندان سج گوی بر در صلاح دارد و کس در هزار نیست تا عاقبتالامر دلیلش نماند ذلیلش کردم دست تعدی دراز کرد و بیهود گفتن آغاز و سنت جاهلان است که چون به دلیل از خصم فرومانند سلسله خصومت به جنبانند. چون آزر بود تراش که به حجت با پسر بر نیامد به جنگش برخاست که لئن لم تنتهی لارجمنک دشنامم داد سختش گفتم، گریبانم درید، زنختانش گرفتم. او در من و من در و فتاده خلق از پی ما دوان و خندان، انگشت تعجب جهانی از گفت و شنید ما به دندان. القصه، مرافعه این سخن پیش قاضی بردیم و به حکومت عدل راضی شدیم. تا حاکم و مسلمانان مسلحتی بجوید و میان توانگران و درویشان فرقی بگوید قاضی چو ما بدید و منطق ما بشنید سر به جیب تفکر فرو برد و پس از تعمل بسیار برآورد و گفت و پس از تعمل بسیار سر برآورد و گفت ای آن که توانگران را سنا گفتی و بر درویشان جفا روا داشتی بدان که هر کجا که گل است خار است و با خمر خمار است و بر سر گنج مار است و آنجا که در شاهوار است نهنگ مردم خار است لذت عیش دنیا را لطقه عجل در پس است و نعیم بهشت را دیوار مکاره در پیش جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. نظر نکنی در بوستان که بید مشک و چوب خوشک همچنین در زمره توانگران شاکرند و کفور و در حلقه درویشان صابرند و زجور اگر جاله هر قطری در شدی چو خرمهر بازار از او پر شدی مغربان حق جل و علا توانگرانند درویش سید و درویشانند توانگر همت و مهین توانگران آن است که غم درویش خورد و بهین درویشان آن است که کم توانگر گیرد و من توکل علی الله و حسبه او پس روی اطاب از من به جانب درویش آورد و گفت ای که گفتی توانگران مشتقلند و صاحی و مست ملاهی نعم تایفی هستند بر این صفت که بیان کردی قاصر همت کافر نعمت که ببرند و بنهند و نخورند و ندهند و به مثل باران ببارد یا طوفان جهان بردارد به اعتماد مکنت خیش از مهنت درویش نپرسند و از خدای از زوجل نترسند و گویند گر از نیستی دیگری شد حلاک مراه هست بتراز طوفان چه باک و راکبات و نیاغن فی حوادجه ها. لم یلتفت نه الى من قاصف الکتب، دونان چو گلیم خیش بیجون بردند، گویند چه گر همه آلم مردند. قومی بر این نمت که شنیدی و ای خان نعمت نهاده و دست کرم گشاده، طالب نامند و معرفت و صاحب دنیا و آخرت چون بندگان حضرت پادشاه عالم عادل معید مزفر منصور مالک اعظم انام حامی سغور اسلام وارث ملک سلیمان اعدل ملوک زمان مظفر دنیا و دین عطاوک ابوبکر سعد اداملا و ایامهو و نسر اعلامهو پدر به جای پسر هرگز این کرم نکند که دست جود تو با خاندان آدم کرد خدای خواست که بر عالمی ببخشاید تو را به رحمت خود پادشاه عالم کرد قاضی چون سخن بدین قایت رسانید و از حد قیاس ما اسب مبارقه درگذرانید، به مقتضای حکم قضا رضا دادیم و از ما مضا درگذشتیم و بعد از مجارا طریق مدارا گرفتیم و سر به تدارک بر قدم یکدیگر نهادیم و بوسه بر سر و روگ هم دادیم و ختم سخن بر این بود مکنز گردش گیتی شکایت درویش در بیش که تیر وقتی اگر هم بر این نصر مردی. توانگرا چو دل و دست کامرانت هست، بخور، ببخش که دنیا و آخرت بردی.